عوض بالله من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العالمین و الله علیه و الله و آله الطیبین الطاهیرین المعصومین اللّه سدای مسعوداریم الله نافع من جمیع شریکین ورحمت ورحمتی حکم حلق لحیه بود از جمله روایات روایاتی که اثبات دیگه در حلق لحیه میکن از کردیم استدلال حالا دقیقا که واضح هم نیست در کلمات مستدرین احتمالا این جهت باشه که اگر قادل شدیم که اگر لحیه رو کرد و نبسل شعر و اصطلافیه سلس و دیه اما اگر سر و هر سر تمام دیه و نبصد شعر دیه نیست پس بفهمیم یک سلس دیهی برای ریش هست که در سر نیست. و از این بفهمیم حرمت حضر اللهی ممکنه ممکن استدلاق این باشه شبیه این که میگن دیه در ماه حرام مغلط میشه سلس دیه اضافه میشه اگر قتل در ماه حرام بود اضافه بردیه سس دیه هم باید اضافه کنه بگیم این سلسه دیه که در حلقه هست به خاطر این حرمه مناسبت ما متعرض روایات دیه در شهر شدیم و روایات خونده شد و انصاف قضیه روایات خالی از مشکل نبود از خود این مسئله از زمان صحابه اونی که منصوب از لرمیر المؤمنین و زید ثابت محل کلام بوده ادهی معتقد زندیه نداره چون شر جزه منافع بدن نیست جزه اعضای حصلی بدن نیست شهر به اصطلاح برجهشون جزه جمعه این دیگه نداره لیکن نفسوز از امیر محنی از زید ابن ثابت که دیگه داره دیگه کامل هم داره. ما به این مناسبت متعرض روایات چه روایات اهل سنت شیعه و مطول مختلف شدیم و صحبت شد تاریخ این مطمون و از این مطمون که دیروز از شد دیگه تکراری نمیخواد بکنیم اونی که میشه نتیجه نهایی رو از مجموعه این روایات گرفت که دیگه در روایات خود اینمم علیه و مورد تایید واقع شده اون روایتی که در جعفریات هم آمده فیضه ها به شعر کله ادبی. اونجا کله داره و عرض شد که این مضمون هم در روایت سلیمان ابن خالد انا عبی عبدالله آمده لیکن اون روایت که از عبی عبدالله سه مرد داشت یکی شبیه توی سلیمان خالد نبود یکی شعر است داشت یکی شعره صدقیت داشت یکی شعره داشت ظاهرا شعر شعر شعر همین مرد مورد اعتماد باشه پس برای این اون قرنماتی اگرنی که ما الان از عدله استفاده بکنیم اینه اگر ذهاب شعر و رس شعر رس و نهیه هر دو شد یعنی سیستی ها با رسیده این کار رو انجام داد و به اصطلاح نباتی نشد دومرکه لند هم بود لحیتی لند بود شعر او، در اینجا قائله به بیه از البته خلاف قائده هست چون جزه منافع نیست از کرده چیزی چیز خاصی هم از رسول الله نهرم نشده چون از امیر و مومنی سامان نهرم شده و در روایات ما همه علیه ما اون رو بردن امام ما از گرده ما هم اینجا رو باید نظر مجموعه شواهد و فتحه از شواهدی که نمید کردیم به قبولی در کوفه شده مجموعه شواهد این مطلب رو ثابت میکنه حتابا مطلب ثابته که در زهاب شهر کله عدیت رو کاملتن این کلشه و اما خصوص لهیه، که تنها تنها لحیه با شیاد و اصلاح شه انصافا روایاتش روچن نیست نقل شده اما اثباتش با شواهد بسیار مشکلی ولذا برنگرده به حکومت و همون نصفت به حساب و اما نسبت این که اگر نوات شهر شد ظاهرم چیزی نیست اون روایتن که میگه سلسدیه ارز کردی شواهد و خلاف در موردش هم هست و اصفات اون مدبر هم خیلی مشکل سلطه دیه ولی که از زمان کلیمی معروف بوده به دارشان اینه از زمان کلیمی معروف شد در خصوص شعر لحیه نه در شعر لحیه سلطه و که اصفاتش با این قوائل کرد کردیه مشکل. پس میشه گفت علا خلاف القاعده در زهاب و شعر کله دیه ثابته این خلاصه بحث جمع جور بحث و خلاصه بحث و به ا و اگر مو برگشت دیه ثابت نیست هیچ‌ورها اساساً توی هم چون خب فتاواشون در این همون سکونی یا دیگه مشکلی به حسابن نه ده شما تا معتبر اذهاب شعر و لهیه با هم یا شعرهو او کله این مقداری میشه قبول کرد روایت معتبر داره در خیر رسول خدا عثمان علیه السلام این نما کلام خود سی کندی که از رسول خدا نقل کرده ذهب شعر را توی نصف ذهب شعر توی, توی نصف هم ذهب شعر او رأسی و, و توی جعفریات هم ذهب شعرهو او کله اینا شواهده که با هم جمع میکنیم انصافا میشه در کتب اهل سنت همونه که منصوبه همینه ذهاب شعر علا تو بعضش که لحیه هم آمده اما معروفترش همون زهاب شهر کلو قدر مطیقنش این میشه البته علاقه لابه قواهد هست و به همین روایت ثابتش شده امیلا قاعدتا در واقع شهر لحیه به اصلاح نیست اون وقتی مسئله دیگه از که روایتی که ما داریم توش عنوان عمد و صحب نداره خطا نداره و علاقه ظاهر روایت که عمد نیست چون آب مغلی بوده. آب مرغی بوده تو حمام بوده شده. احتمالا خطا باشه. الان حاله به هر حال ما در روایات ما کلمه عمد و خطا نیامده البته ممکن است اون تقسیم که ثلاثی معروز در باب جنایت رو بگیم چون تقسیم معروف اینطوره یا عمد یا عمد شبیه خطاست یا خطا. اصطلاحاً در باب جنایت اینه. عمد اگر قصد اون عمل رو کرده با آلتی که مناسب اون عمله مثلا قصد قصد, قصد کسی کرده با شمشیر زده بشت هم قصد قصد داشته هم آلت معلوم شبیه هم یا قصد نداشته یا آلت قطعه نبوده مثلا قصد با اصال زده به کسی قصد قصد هم نداشته تصادفان افتاد مورد خود به شریه افتاد مورد این رو اسمش اصطلاحا امر شبیه خطا میگن یعنی خطا که اصلا قصد کننده نشه یعنی در امر شبیه خطا قصد زرد یا شک اصل نداشته و آلت هم معده نبوده مثلا مثلا ریج است مثلا موضوع مثلا به یک از خواص یا موت این رو میگن قتل به سا امر شریعه خطا اون بحثی هست بین فقهای اسلامی می جمله در بین فقهای ما آیا این تقسیم سلاسی در اعضا هم هست یا نه اعضا و منافق یعنی آیا این تقسیم سلاسی سلاسی فقط در نفسه یا در دون نفس هم هست معروف بلکه شاید اجماعی فوقهای ما باشه که این تقسیم سلاسی در اعضا نیست یعنی در اعضا که خود مو هم همینطوره یا عمد یا خطا. سه حس نداریم در دست در هم گش بریدن یا عمد یا خطاب اونجا ما سقیص نداریم پس بنابراین این, این که در, روا... در یک عبارت آمده و خطا در عبارت عرض سنطن اینجا آمده عرضش آمده این مهمیست است و که ما در باب دونن نفس تقسیم ما سنائی باشه سلاسی نباشه یا هم یا خطا یکی از این دوتا احتمالا این قصه همم هم خطا بوده که در همانه همزن باشه آب داغنه ایفتش آب سرده یشوع فرامان انگار ابدور بوده سوزون ماشي ظاهرمون اینطوری عمل بکنی روایتی در باب مو اومده اینو اصطلاحاً به علت طبقه قاعده این مثلا باید عمد شبیه خطا میشه ما در دونه نفس این هم یه نمایه قاضی در باب خیلی شدید و و مهمه ما نداره اون وقت بحث دیگری که هرضای در مانع نفسی حالا فرض این دو قسم آیا در ذهاب شهر بین هم و خطا فرق ارزش تا اونجایی که من دیدم از شریح قاضی نصفر داده شده از طابعی از صحابه نیده فرق بذاشتن در عمد گفتن قصاص در غیر هر اونطور و در متون روایات ما این نیامده اون چند که از انیر موقعین در کتب اهل سنت این نیامده در هیچ یک از متون روایات ما در جعفریات هم این نیامده در کتاب سکونی جعفریات فقط در کتاب دعای مول در فغورزان مثلا اینه در جوهای ما سه و چار ماه هم نیامده فقط در دعای مول اسلام آمده که با در نظر گرفتن این که اون متنی متن ففید ظاهرن فطلای ایشان بوده که اگر عمد باشه قصاص این که گفتیم مال خطا هست آزا فل خطا و اما فل عمد الفصاص این فقط تو دارمون اسلام آمده نمیده از بسید دارمون اسلام بخوده بسید کنید یک ارزش دیگه هم داره اون چون دارمون اسلام مثل مثلا احکام مثل ها که زمان ما در جمهوری اسلامی چون الان در جمهوری اسلامی خیلی از ناشتی در غذایه میشه میان مثلا از حوزه سوال میکنن کتاب دارمون اسلام کتاب عملی بوده یعنی آین نامه داخلی هم بوده اجرا شده حالا آیا مثلا این فقیح حقیدش این بوده که در مقام اجرا اگر عمدن آب جوشیخ هم همونجور آب جوشان بسرش کردن یا عمدن حلق لهیه کرده عمدن حلق لهه بکنند؟ خست در باب مو ما در روایات خودمون در عبارات فوقهای خودمون در قدیمی ها که متعرض شدن کسی متعرض فرق بین اند و خطا نشده از نیست که ممکن نیست؟ چرا؟ چون یک مقدار از اون موارد که قصاص ممکن نیست مثلا آبجوش یخته نمیشه کنترل بکنه. آبجوش میزیم بیش سرتر. تا. یک یه هم اینطور نه این این خب شو یه که میشه خب دیگه میشه رو یه ما باسکتبال می‌گیم لهجه بازی ممکن گیره. خواب بوده باسکتبال بازی تمام ترش این که قصاص ممکن در بعضی از مواردش ممکنه. بلکه اعتراف کردم در وطنم ما کلا در موسون روایات ما در مصرون روایاتی که اهل سنت دارند، دقیقا تنموندین؟ فرق بین قصاص به این تمام مسابقه که ما این چند روز خوندیم خیلی مسابقه خوندیم هیچ مستری به استثناء اون کلامی که ما از شوره حفاظی نهارو کردیم که در مصرنت عبدالعز از مسادر اهل سنت آمازه و به استثناء دعای مالاسلام ما جای بحث قصاص رو نداریم بله در ادهه از کتب سنی ها مثل کتاب هدایه مغزینانی دیدم من ایشون تصریح میکنه که در باب مو قص و خطا یکیه اصلا اونجا دیگه تصریح داره عبارات ما هم تصریح نداره این ققیه حنبیه در این کتاب فقه حنفیه تصریح داره که خطا و ام در باب مو یکیه این خطا و ام در مثل انگوش هم میکنه. چرا؟ اون استبدالشونی که بر جروح و قصاص قصاص باید در جرد باشه این چون ذهاب و جماله، این جرح نیست چون منافقه نیسته برداشته با تیخ صورتی این تراکیده این جوری ایجاد نکرده اونا دخلت نمیده؟ انصافن حرف طبت نیست حالا ما خیلی مقاید نیسته که حرفای سنوی های بگیرم انصافن من انصافن منم توجه نداشتم تنبه، تنبه خوبیسی که در روایت ما هم حساس من امده احتمالاً نقطه اساسیش اینه پس این اصلاً من در مسادر خودمون در تونجه من حتی اونه جواهرم نداشد چون جواهر سریع خوندن خیال خوبی هم که ندارن سریع خوندن حالا شاید خلال بحثش که مقدم. مقدم. میده بعد هم جواهرمون چی مقلق هم چی صافه صافی تا آدم بخواست شکر مقدم هم بایه بخواست دو سه جنگی در دو ولی و حال و بزار بررض سریهبعی رو. در از اینکه حالا اقلافی داره مثل اون تا از کتاب مهم است که ملت باشن با از اینکه الان تو ذر نیست تو جواهر بینطر بین احساس بین هم خطابه کتاب هم به گذشته باشه. اما در کتاب یا خود هدا مرگین بوده در حاشش او چ هم تو ذهنم نیست تصیح میکنه که در باب بابمون چون جمال و منافعی. چون جماله این قصاص کلن نداره چون انجروه و قصاص این جرهی نیست اگر جرهی نبود این دیگه جای قصاص نیست هر فرق خوبیه به نظر من روایات ما هم که اطلافل نفش همینه به فرق میگه در روایات ما از کردم به استثنای کتاب داعه هیچ کتابی که به نهی از انهاب ما مربوط حالا فیغور رزا حساب بکنید کتاب زیدیه هر چون شما زیدیه را ن هیچ خوردنشون فایده نداره خطا نذاشتم و انصاف رو به ذهن امنیت این مطلب درست پس ما بر این خلاصه بحث بکنیم ذهاب به شر کله یه ثابته علاخلاف قاعده و مراد از ذهاب شر مثلا حالا ایو آبی یا میوه یا فرضن اشتباها مثلا این آقا رو که شهنیتیش نبود که فرض چی میشن الان یک عملی میکنه شیمی درمانی این آقا رو یه قرص شیمی درمانی موهاش میره و بعدن در نیامد البته یک آهای برای از برست که که مورد بوده که سره به تراشیدم بعد در نامده این حکمش با ما دوتاست چون اون که پیازموش مشکل باشه که تراشیدم در نامد اون دیگه با خارج تشکیز بده بس مهمده کلام این که پیازمو عادی باشه حالا یک کسی طبیعی نبوده سرش تراشیدم با به با کیه و اوفران بعد یه مو در بدن خب مثلا غیر عادیه خود اون موم مشکل داره خود این بدن این شخص مشکل داره اینها اون که پس مراد اینه که اگر کسی بوی او به نهری پراشیده شود که در نیامرد او دقت بکنه این زیبایی او را علاوه خدا سر قواعد قائله که عمده همین روایت جهتر یات که صریح و روایت سلیمانه به یکی شوی شعر رو صحیح تنه یکی هم توی زهاب شعر رأسی و لحیته عمده دیگه ما مهم و از خواب ما به کمپرش هم گفتن به رأس تنها هم گفتن به لحیه تنها گفتن پس به لحاظ تلطیه به قبول بگه از هم این فتوا مشکل نداره پس نتیجه نهایی اینه و این مخلق در حلق لحیه بخوره درده از جله عدمه بله بله سر روش باییم دیگه نموهاد بقیه بدن. زیر بغل و سینه و پاوینا نموهاد اینم از که دیوز قرآن شما خارجی برای مطلب وجود داره که فهمیده میشه این تا اینجا راجع به این دلیل دلیل, دلیل در باب قرمت هر قرهه بودیم این دلیل انصافا دلالت شوشن نیست دلیل دیگری اده از فوقها چه قدیم چه جدید بلکه خود در عبارات اهل آمده و اونا می از این در باب حرمت حلق الهیه دارن حدیث است که لباس دائما رو نخوشی. در این کتاب و من الان از جلد سوان چاکه ای ربانی می خونم سفره باب از عباب لباس مسلی حدیث شماره 8 و به اسنادی. یعنی اسناد مرحوم صدوق ان اسماعیل ابن مسلم من مراجعه نکردم نفهم رویه رویت یا رو نیست اگر خودم کسی کمپلیسی پیش از نگاه کنم یعنی توی... چون این کمی تسامح داره و به جامل احادیث هم برگشتم پیدا نکردم کجایشون استخراج کرد حدیث رو نگردم کجا آورده ایشان مرحوم جامل احادیث در کجا صدوق نعم کرده چون در یکی دو که مناسب بود نگاه کردم نگذا جامل احادیث حقیقا خلافتا امروی بیاله جیدی می شد مرحوم صدو این روایت در دو باب آورده یکی لباس المسلی آورده یکی هم در باب جهاد عدو آورده مرحوم صدو در جهاد حالی در باب احکام ملابس آورده حق این است چون مرحوم صدو من ارز کردن یک ابوابی داره لباس المسلی یک ابوابی داره احکام الملابس گفت خاص به مسلی نیست مناسب بود تو ملابسی که رو می آور نه تو لباس اونسلدی دفکر بهارینه که آاهل لاان نبی من انبیه یه قل مهممنی لا ت به لباس و ولا تسلکن که اعایی فککون و اعایی که ما ها عدایی من تعجب میکن از برون شق شیخ های واقعا من بزرگواریه خیلی واقعا تقیی میسه البکه این به درد لباس نمی‌خوره، اما این بود بحث اجتماعی نه باید اضافه بشه که اگه لباس اعدار پوشی نماز خون آی نماز مثل هر قصف مثلا محصول به قصف به درد سلاس نیخوره اما به زمینه مسئله اصولی اما نه در سلاس نیست مطلق ملابسه لذا منم هم واقعا تو دفرم چون مناسب بودشون بحث توی احکام ملابس می آوردن نه توی البته توی ملابس لب آوردن اما توی تو این باکشون بحث لباس سیاه هم آوردن پوشش سیاه و این توی ملابس هم سیاه رو آوردن این یکی رو نیواردن نمیشتن تقدر نمه در باب سلات لباس مسلی اصلا مناسب بود این رو تو ملابس می که تو جامال احادیس هم تو ملابس اورده اما اینه سنده نیاردیم دارم چرا نمیتونم توی جامال احادیس تو جلد دیسته بیسته یه که تو عبام ملابس اورده این مناسب با ملابسه احکام ملابس تو رو مطلب این راجع به جایگاه حدیث و اما به نصفی به مسادر حدیث در به حسب طرقی که ما الان از این حدیث داریم مرحوم کلیم این حدیث نیارده این مال مرحوم و کله این صحابیشون جدا مرحوم صدوق رزوانده این حدیث رو بردن در کتاب فقیهشون اگر این درست نویشت باشه به اصنادیشون متاسفال صاحب و صاحب فرقی به اون عبارات صدوق نمیزه شونگاه صدوق رویه همیزه کنی رویه بازه رویه بازه کنی عباراتش مهمیشون رو فهم نمیزه بنا بسیار کرد به اسمش خوب مثلا درست این به نحله رواص اشغال مرقوم صلوح این حدیثو از کتاب سرکونی نقل کرده که نسخه ایشان همون نسخه ابراهیمه هاشمیه نسخه معروفی بوده نسخه هاشمیه ان صادق علیه السلام قال انه او هل لا نبی من من خب این به لحاظ مستری که در اختیار صلوح بعد داره مرقوم وسائل و رواه و فلعلان مرحوم صدو باز در بسند دیگه در کتاب علم ان محمد ابن الحسن ان صفار البته در کتاب کتاب شیخ صدو این زیاده محمد ابن الحسن این محمد ابن حسن این هست این این طور نیست که حالا این شد مرحوم صاحب بسته هسته بایی که اشتباه نشه در دومی دو تصرف میکنه خب بخواد در اربعی این تصرف رو کنه اولی ابن ولید به ایشان محمد ابن حسن ابن, ابن ولید. از مشایخ بزرگه و دومی صفار محمد بن حسن صفار بله یک حدیثی هست در کتاب سفینات البahar منع میکنه حدثنا قال فلان حدثنا ابو الحسن قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا ابو الحسن عمل آل آل حسن عمل حسن علی الحسن وقال ان احسن الحسن خلق الحسن خیلی حالا در مفاتح لطیفه حدیث هر کدون شدیه که از این حسن هاست که جایش اینجاییست بحثش و توضیح اینکه من محمد ابن حسن, عبال حسن ها عبال کی ان سفار ان ال ابن معروف که سفارشون هم میکنه کنه ان نوفری ان سفونی ان من توضیحات همین اخیرا هم عرض کردم دیگه تکرار نمیخواد خواهد بکنم از نوفری ابراهیم نهاشه نه میکنه کنه این به احادیث نادری است که عباس ابن معروف نقل کرده. ما سابقاً همیشه مطمئن روایت نوفلی در خوشه بوده. ظاهراً اواخر حیاتش در ری آمده و این هم و این که تأج و تشرف در ری بوده، چطور مشایخ دیگه ازش نقل این عباس ابن معروف چرا کرده برادر؟ این کمه. نه نوفلی نه سکونی. این هم سران برمیگرده به سکونی. اختلاف نقل نوز... داره اما نتیجه چیه و رواه فی اویون الاخبار ان تمیم ابن الله ابن تمیم قرشی از مشایف ایشان که نمیشنسیم که به احتمال قوی از مشایف سنی ایشانه ان عبی ان احمد ابن علی الانصاری که این رو هم نمیشنسیم ان عبدالسلام ابن سالحل حربی همون عبدالسلام حربی معروف عبدالسلام ابن سالحل حربی من کراه نهارز کردم این ابو سالف رباراتش در میان اهل سنت بیش از ماستا خیلی عجیبه و ازدهی هم قبولش کردن لیکن موزنشون تذبیرش کردن عبا سالف حربی شیخ گفته آمی شیخ توسی ازدهی هم به شیخ خنده کردن که با بایدیم معروف ابو سالف حربی و قبرش در مشتب و مزاره چطور میشه آمی باشه حق با شیخشون آمیه تشیعه اصابه ایشان ویلاغ به احلبه داشته در مدتی که از در مر بودن سعی که در خدمت حضرت باشه مطالبی به از این را درسته اما این حالا واقعا اون شیعه اون باشه شواهد معیین این مطلب نیست هنه عبدالسلام ابن صالح حروی که عباسرد عن رضا عن آقایهی علیه همسلام قال قال رسول الله وکه اونجا داره لا تل بسون نه اوحال او لا الانمی من سابقا چرا هر کردم و کار خوبی هم از اگر این کار بشه از قرن از اوائل اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم ائدی از نوادگان یا از خاندان صحابه نویسارهایی رو به سندهای خودشون از اجدادشون از صحابه نقل کرده مثلا این از پدرش از پدرش از جدش مثلا صحابی این از اواخر قرن دوم جا افتاده و کناران کردن کردم مهمترین کتابی که اینها سمنی ها دارن کتاب بوده که نویه نویه عبدالله به سن هم را آس نعمل کرده چیز دیگه هم هست از همین زمان هم ادهی آمدن از اهل بید با همین سن هم نعمل کردن که اولین اونها حضرت با سجال سامنانه همین مسند زید اگه شنگه باشید که گاهی همش مجموع میگه. میگن زیده نه علی، علیه اینه ابیه سجاد اینه ابیه حسین اینه علیه این اولشی از امام باقر ارز کنم چند بار ارز من ندیدم آن اگرم باشه شد باشه من ندیدم از امام صادق زیاده هم همین سکونی از همش معروسه سکونیه کتاب سکونی کتاب عبدالبختری وحبه ادهی از کتب هست هم جعفر اینه ابیه اینه آبای هن علیه یا علیه یا قال یا قال رسول الله این داریم از موسفل جرفن چند تا داریم یکیش هم خدا شما جلزی شاب کردن مصدر امام کاسیم مال اون مروضی رسول اونم داریم چند افیقه اون دیگه هم داریم هزار بیاد زیاد داریم حضرت عزیزا زیاده از مجموعه منغول عزیزا هفتار تا که استباهم بشونن صحیفه صحیف الرضا گاهی بشونم مصندل امام الرضا، گاهی هم به کل اینها میشه بگیم مسانی رو عهد بید به کل اینها یعنی زم... مثلا بگون یکی که از امام سجاده معروف از مصندل امام زید به زید مصنده داشت مصند به این معنا که این آقا از سلرش از هم رسول الله هم و مصند ورخیر طریق ما هم داریم من یعنی شهر بودم صابقه هست. این صاحبه هم جمعاوالی نفیده خیلی هم کنی جمعاوالی بشه آقا این در افطلاحا مجموعش میکن مسانید اهل اهلالبیت یکی از نبادگان عمر نعریه نعبی فالم اون هم داره عیسیب نعبدالله عیسیب نعبدالله اون هم داره ما از اون کتاب هم داریم در کتب اصحاب ما در این کتاب کتب اربعه ما یک مختصری از مسند زیده یک مختصری از کتاب است. نسبتا مقدار معتنابیه از کتاب جناب سکونیه از بقیه کتاب امام صادره. یه مقداری از مصند حضرت مصند جعفره از مسامید حضرت رضا که من میدونم. این استفساره کامل نکردم در کافی نداریم. موزم مسامید حضرت رضا در کتاب صدوق آمده خوصا این اخبار رضا صدوق زیاد داره. یعنی موزمی که ما از مسانی درزرزاداری در کتاب صدوق آمده و یه نکته دیگه بین این های تشابهات یعنی هستان اون دفعه میشیم بود یعنی گاه روحای تو مصند زیر چیزی هست تو سکونی هم آمده تو مصند از رزا آمده نمیفرمونه علبه چیه آخرین ایشون هم بگه ایشون هم یه مصند زنن دیگه بعد از اون نداری با عنوانه مصندی که از من این بزرگ که اون هم در عمالی شیخ توصی آمده توضیحات من از کردن یه جاش اینجا نیست حالا یه حاله یه مقدار مقدار مقتنابی از این مسانی از رزار و مرموم شیخ صدوق آورده ما مثلا الان قیون اخبار رزار که ایشون آورده خود روایت از هم آورده ما بگیم روایات رو با مسانی جدا بکنیم بروشنشون مثلا میگه خالا قلطل رزار پس مثلا الان این با مسال دارتون ب بزنگیم اقضا رزیاده وار از عزا داره سه زاده داره از داره اما اونا مصند نیست نیست انعرل حسن عبیه آبایی این قال و قال ما میگه اصطلاح هم اونا رو میگیم روایه اونای که میگن انعرلی هم آبایی میگه مصند بسند شد اصطلاح اینی که شیف در بعضی از تراجم در وجاز اصل ندهن اصل نده روا وان هما اصل نده یعنی از این امام عن ابي رسول الله روا یعنی تنوی نمونوا یعنی از خودتون نقل کنید خرد ما ببینید اصطلاح رو بگیرید در کتاب شیخ صدوق که اسمش اون اخبار رضا این خرد گذاشته نشد اشتباه نکجا در کتاب اون اخبار رضا این, این اخبار رو به یا عام گرفته اما اگر این کار میشد خیلی خوب بود مسانی در حضرت رضا رو با روایات حضرت رو جدا میکردی این خطه ای که در ایشان الان در امون اخبار نمک کردیم، جدا مسانی در بین این مسانی یک تشابه ماهی هم هست یعنی ممکن از یک چیزی رو این با مثال در کتاب سکونی باشه که مصدر امام صادقه شبیه اون مرد یا خود اون مرد در مصدر حضرت رضا روشه یک تشابهی هست حالا از که اینه همشون این, این تحقیل خاص تاریخی میخواد جاشی اینجا نیست. اجمالا این مطلب هست. پس بر میگرده این سند به سکونی. بعد از مرموم شیخ صدوب هم مرموم شیخ توصی این رواسته آورده. مرموم شیخ توصی این رواسته در کتاب مرموم صاحب وسائل توی کتاب ابواب و جهادل اعدا آورده. اونجا نمی کرد. این هم یکی از معاقضاته مثال بسائل کرارا نه همس کردیم یه همیس رو در یه به یک یه جا محصد یه خب خوب, خوب در هر جا استکمال بخواد چون نسونه سونه ها رو اینجا از طریق صدوق آورده فقط شیخ رو ذکر نکرده تو جهاز اعداد فقط از شیخ آورده صدوق ذک ذکر نکرده همسی نمشه فقط در بابل واسم اشاراتی داره نکرده من هور هم از طریق سفار ان ابراهی نهاشه بقیه طریق پس تا اونجا که ما الان داریم در یک نسخه در یکی از نسخه در یکی از مسانید من شب شبهه دارم که دید مسانید از نسخه زانم مسانید متعددیه اون مجموعه رو که من دیدم حالا هم و من، به ذهن من استقصانه کردم به ذهن من بین هفتات تا هشتات تا سلمه و ادهی از این مسانی از اجایب کاره بین اهل سنت از ما مشروطه اصلا این مصند زید که چاپ شده یکی از مصند از ارزا با اون چاپ شده یعنی بین زیدی ها مصند امام رزا با مصند زید چاپ شده یکی مهداری به خاطر هم ولی احبودن ایشان هم به خاطر جرانت خاصی حد ارزا تا ما بین سنی ها هم عنوان در اشتباه نشه اونام هم نعم. و این مصی خوب دف کنید تمام اونایی که من دیدم حال گذم استافالن دارم یک نفرش از مشادی ما ما نارن وزنی نح کرده باشیم یکیش ن همه افرادی هستن که محل کلام زواهرش هم بهشون سی باشن و مثلا موای باشن مثلا س و سلام صح هری این هم راجع به این پس این روایت واحد فعلا از کتاب سکونی آمده اون کسان بخاطر کسان که شایع که اشکال محرمه، غی اشكال جموازه به خاطر نوفلی خکونی که سم که میخواد قبول بکنه قبولش واظهری برعکس گذشت این راجبی این حدیث چرا مثلا ما در باب امام مثلا امام صادق داریم که اونجا هم اینطوری بیشتر اهل سنت دارند خود وقت سنی سکونی سنیه ولی توشون غیرم هست مسلمان داره اما واری که آمده خدمت امام نام می کنه کله زاهر فرمود که اعراب و منازل الناس عنا به قدر روایت عنا که دین چقدر آیا گفته هر کسی کسی توی باشه قبولش این نیست نکرده کلمه الناس یعنی اهل سنت اگر بخوام ببینیم این چنمیه موالی بدبین ناسپیه بین از ما حدیث نقد میکنه نه اگر نه اگه زیاد نه میگه ایمانش ولایتش بود نه اینکه اهل شیعه است اصلا نه نمیکنه اون این منوش خالی از ناسپیگری هم نیست این طرفو منازل الناس ناس ناس اهل سنده علمای ما دادن مطلق روات حتی مثلا مثلا عمر در حاله عمر مذهبی نیست شده اون اصلا نازا ببینید چون اوله کتاب کشی آمده اینا خیال که مراد می که هر کسی کسی رواید پس این سه هستم کسانی که توصیح کردن نکتش اینه و اون روایت هم دلاره که این مطلب نداره در کسی روایت هست زیاد در روایت ناس نه احرسان مشهور مردم مردم یعنی مردم احرسان برم این واقعه به نقطه این که به دهازه تاریخیش معلوم شد از کردن دو بزرگوار ما نرمی کردن مرحوم شیخ توسی بعد از این دو بزرگوارم کتاب ایسمان مرحوم قطف راوندی به نام لبال لباب تو زهنم اینه که این کتاب هم رسا همین کتاب های سکونی و غیرون گرفته هر من خودم کتاب نیدم مجموعه رو باید ازش نرسل دیدم زهنم اینطوره این تو کتاب لبال لباب مرحوم قطف ر نهایتا مسترش برد میره به کتاب سکونی یه دوات بین به این ما و فعلا تا که امروز نگاه کردم توی را آمنه به این محص من نیرم توی مسادر آمنه ممکنه باشه من استقام خیلی ناقص با این کمپیتر ممکنه نکردم اونجوری یه مراجعه بسیط دستی کردیم شاید باشه آقا نگه که اونجا تحنیل خودش داده بشه اون وقت راجع به بحث بعدی راجع به دلالت به این ر عترن لا طلب سو ملابس اعداری رو بر حرمت میکنه در کراهت میکنه ثانیا مراد از ملابس اعدا چیه اگر یک چیزی ملابس و البته اینم هست که اینجا در باب غیش، در باب تراشی لباس مطرح نیست ولا تطعمون متاعم اعدايه مطرح نیست ولا تسلخو مساله که اعدادی این ممکنه مطرح بشه به نه لباس مطرحه نه تحت آم چون ری شدیه بیشتارشون اینکه را زیدیه تو باز شد مرموم صدوق و غزان لا در متونی که آوردی اینطوره این طوره این هم به درد ما نحنفه نمیخوره لا تسلخو خیلی به درد نمیخوره اونی که به درد ما نحنفه میخوره نصحه مرموم شیخ توسی شیخ توسی نصحش این طوره ولا تشاثلو مشاکلت هرداری شکل هرداری رو من نشین اون مرمز به درمان ما نحنفی میخوره روشن شد پس معلوم شد که این به واسه هم گیر داره اونی که به درد ما نحنفی میخوره همجه که گیر داره تصالب هست اون لا تسلخوس یا لا شاکلو اینجاش گیر داره در نسخه شیخ لاتو در نسخه صدو لاتسلوکوست اگر لاتو شاکلو باشه اون به ما میخوره مسلح که این که انجام میدن راهی که انجام میدن مسلح فرصوی بانداری شما نکنم نه ریش چه اون که نمیخوره نه نه باییده مشاکلت شده شکل اونها نشید خب این هم اشکال کردن که این اولا کراهت در اولا محض مختلفه کراهت هست یا حرومت این هم مختلف آیا این مطلق یا نهزیه؟ این مشکلش نیه. این لاتو شاکلو مطلقه مثلا فرص زمان رسولله اعدا رسولله یه چی کنی می پراشیدن این لاتو شاکل هست یا اگر زمان عمل شد مسلمان رو شون میت Lucaric عنوان مشاکری به سرخه نمیکنه زمان به زمان زرم میکنه جرگی یک زمان ایش ها سرخه اما الان دیگه سرخه نمیکنه اگر تایبن که بیشتراشی میکنه از بیشتراشی مثلا, یا ها مثلا, مثلا حسن یه حسن ها ملیشی مثلا بیرگ نه جای این اقام مثلا آن مسیحیه یا این اقام مثلا بودایی این در اک و اگر در نیامت بگیم که دیگه در اونجا حکم برداشته می که زمانمان ما هم می شود آیا این لاکی شاکلو امر واقعی وحدانیه یعنی امر حقیقیه یا امر نسبیه؟ اگر امر نسبی شد در هر زمان که مشاکل با حرام می شود اگر مشاکل نبود نمی از این حق خالص می شود پس این این حدیث این بحث هست که آهالی مطرح کرد از همین که شده و جواب ها اونی که به ذهن ما میاد را جده این لاتش ها رو در اون این دو بحث داره یه بحث کبرا داره این تا اینجای بود که آقای نرشتن یه چیزی که مخونه هست یه بحث سقرا داره بحث کبراش همینه که لباس اردا نپوچین مشاکل اردا نکنین یه بحث سقراش این که اتر اشتراجی جز این هست یا نه. ما در مورد نیشتا در که مشاکله هست روایت ندارم الان روایت ندارم لیکن اگر ذهن مواردتون باشه روایت که کنزول امال خوندن براتون اصلا سوال و جوابه آه یا رسول الله مثلا مشکل اینجور لباسون بوشند از فران نه شما جور دیگه لباسون از یهود هود برنسا بر مشکل گفتن یا رسول الله مثلا اونا خضابشون سیاهه هزر نه شما خضابشون قرم اهل کتاب چند تا داره مثلا اونها کذب نمیگه میگه نه شما نغری بزنین خالص و اهل کتاب خود میونه واسه شه یک شب همین میشن البته اونجا میشن داره با سبیل با هم که ارشد از اهل کتاب مشرکین ریس و سبیل رو با هم میکشن حضرت میفرم نه شما مخالفت سبیل هیش رو تراشید اون روایت در مصادر ما آمده در مسادر اهل سنت آمده آهان هم در جهر تنصف نکردن. اون رواید آمده تطبیق کرده این کبرار برشته و شهید اصلا این رواید تطبیق کرده که لا تلبسو ملابسه هر دارد این راجعه به نحوی استدلال دهدید، حدید صغرا و کبرار وقت تمام شد این چلا فردا تطلبه کلام اصلا این لا تلبسو و هر دارد یعنی چی؟ این فردا توضیح شده